آمد رمزان و موسم باده برفت دور میناب و ساده برفت هر باده که داشتیم ناخورده بماند هر قهوه که یافتیم ناگاده برفت این ربات را که عالم نام است آرامگاه ابلق صبح و شام است بزم که با صد جمشید است گوریست که است که تکگاه صد بهرام است اکنون که گل سعادتت بر است دست تو ز جام می را بیکار است می خور که زمانه دشمن قد است در یافتن روز چنین دشوار است آن قصر که بهرام در او جام گرفت آهو بر کرد و شیر آرام گرفت بهرام که گور می گرفتی به کمند، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت